بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه أجمعين ما بعد يوشار من درس هذا درس يسوع يوسف عليه الصلاة والسلام أي نبات فرمودية الله جل شانه قالوا أإنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي قبل استاد قال هل علمتم میدونید عزیز مسئله میدونید می با یوسفو برادرش شکار کردید اون موقعی که شما نادان بودید جاهل بودید اون موقعی که دنیا شما رو کور کرده بود دنیا رو دیدید انسان اینطوریه همه این مردم هر خطا که که بینید اون چیزی که سبب میشه که جرأت بر گناه و معصیت پیدا بکنه دنیاست و کور شدن و نابینا شدن در مقابل آخرآقایت آخرت. آخرت رو دیگه نمیبینی، این جاهله فقط این جا رو میبینه دنیا رو میبینه آخرت رو دیگه نمیبینی. هر خطا کاری. حال و روز مردم چی مهم براشون این دنیاست. و قرآن اومده برای یادواری کردن این صحنه محشر حساب. الله چقدر در قرآن اهمیت دیده به اون صحنه که انسان جلوی چشم خودش بیاره و خشعت الاسوات للرحمن یوما یکشف عن ساق. صحنهای سخت. که الله میاد با اون عظمتش در صحنه محشر خلق الله از قبل بیرون اومدن لخت و در صحنه محشر حیبت اونها رو فرا گرفته همه صرف کندن همه سر به زیرن همه در اون مقام ذلیلن هیچ کسی بر کسی قدرت نمایی نمیکنه همه از هم دیگه فرارین پدر از فرزند فرزند از مادر از برادر همه از هم دیگه فرارین همه پر از تقصیرن این در حق پدر که کرده اون در حق مادر اون در حق برادرش اون در حق خواهرش سحنة سختية بعد بإستان الله بان عزمت شبیاد نوارا صدا بزنه لما للمولك اليوم دلّا الواحد القهار همه مغلوباً بدرگاهش وخشعت الأصوات للرحمن يكهمسي همسي یك يك صداي یك هم نمیبینی همه خاشعن همه مقام مقام الزلت خارية مقام بندگی که بنده اونجا میداند که چقدر سرکش بوده هیچ کس حرفی نمیزنه هیچ کسی صدایی ازش در نمیاد در صحنه وحشر خشعت الاسوات خشوه همه جا را فرا گرفته همه ساکتند الله اومده اتمام و حجت بکنه با بندگانش الله اومده برای قضاوت بین خلائق با اون ملائکه ای که کافر و حاسیش را به زنجیر کشوندن و دارند قل و زنجیر در گردن و دستشون میندازن و اونها رو کشون کشون به طرف جهنم میکشن و اید الاغلال و فی اعناقهم والسلاسل و سلاسل یسحبو زنجیر به با گردنشون و در صحنه محشر میکشن اون خطاکار اون تبهکار على وجوه معمین میکشن طوری که چشم و گوششون از دست بدن کر بشن، کور بشن، چنان محکم بر زمین محشر کشنده بشن که دیگه چش نابود بشه، سر نابود بشه میکشننشونو محکم میکشنن اونها رو محکم به درف جهنم سحنه سختیه لمن الملکلیه و هر تبهکاری هر ظالمی هر سرکشی هر متکبری هر قلدوری سحنه سختی الله از اون هیبت حیبت و رستاخی زیاد میکنه خیلی سخته سحنه انسان بیاد داشته باشه خوصا اون فرشتگانی که الله یاد میکنه که بر ظالم و بر ستمگر و تبهکار چیره شده با اون عزمتی که دارن و شدتی که دارن اینا همه انسان باید به جلو چشم خودش ببینه اینا خشوع میطلبه خصوصا در سر نواس جلو چشمش خودش ببینه که منم شاید یکی از همینا باشم یکی از همینایی که زنجیر به گردنشونه زنجیر به دستشونه با این همه ظلم شاید منم یکی از همینا باشم که مرا فرشتگان در زنجیر بکشم به طرف جهنم کی میدونه عاقبتش کی میدونه با کی از دنیا میره با بدی از دنیا میره کدوم یکی از ما از عاقبت خودمون میدونیم کی میدونه که روحش رو کی کدوم ملائکه میکشند ملائکه جهنم با اون کفنهای جهنمی و یا ملائکه بهشت الهی با کفنهای از بهش کدوم ملائکه میان روحش رو میکشن هممون باید بمیریم همه باید بمیرن همه عجل داریم باید به فکر اون عجله باشیم اون صحنه ای که روح از تنمون بیرون کشیده میشه صحنه سختیه فرصت توبه نیست در اون لحظه فرصت برگشتی و بازگشتی دیگه به با دنیا نیست از حسرت الله یاد میکنه در قرآن از ندامت و پشیمانی اون لحظه ای که روح به غرغره میرسه به حلقو میرسه که تمنا میکنه اون خطاکار اون ظالم اون تبعگار اون گناهکار که فرصتی برام بده که عمل نیکی انجام بدم صدقه ای انجام بدم یک کاری بکنم برای خود یک ذره کاری هم میخواد انجام بده صدقه هم میخواد انجام بده که فقط نجات بیاد دیکه یا ویلتنا مال هذا کتاب لا يغادر و ولا کبیره. روح کشیده شده بیرون. در قبغ خوند شده بعد از صحنه محشر میاد بیرور پرونده رو میبینه یا ویلتنا مال هذا الكتاب چی کتابیه لا يغادر الصغيره ولا کبیره. نذر ریز ندره بزو کی چی رو نه کرده همش درش نوشته شده صحنه ها است صحنه به دست گرفتنه کتاب صحنه روی سفیدی صحنه دیگر صحنه سخت روسیایی زشتی زلط ما این مقام زلط رو در این دنیا از برادران یوسف میبینیم اومدن سر و پایین هم جلوه برادرش مقام ذلت ظلم در این دنیا تابان سخت داره چه برسه به آخرت ببینید اینا چطور زلیل شدن؟ فرزندان پیغمبر یعنم چی گناه اینا رو این توری زلیل کرده، خار کرده؟ حسادت فقط حسادتی که سبب شد ظلم بکنم برادر نکشتنش ولی شیطان اومد وسوسهشون کرد، او را بکشن. بعد یکی از برادرها گفت نه تو چاهش بندازی. تو چاهش انداختن، اینطور ذلیل و خار شدن. الله اینطوری سخت داره عقوبتشون میکنه. اگر میکشتن چی میشد؟ پیامبر از پیامبران الهی است. فرزندی یک پیامبری هم هست. میکشتن چی میشد؟ الله چه عقوبتی بر سر اونها نازل میکرد. این عقوبته رو اینا دارن درک میکنن و میبینن. یوسف عسرو به اونها میکنه. میگه میدونید که چیکار کردید؟ خطاتون چی بود؟ اینها اعتراف تاران. حتی این هفت را از یوسف میشنوند و اسم یوسف از زبانش میشنوند و اینا اومدن برای جستجو کردن الله سبب میکنه سبب شده جستجوی این نیاز که برن پیش خود یوسف و حاجتشون پیش یوسف باشه فقط یوسف و هیچ کسی نمیتونه برآورده بکنه اون شخصی که مظلوم واقع شده اون مظلوم شده عزیز مصر و همه کاره مصر زمام امور رو به دست گرفته و اینا محتاج اون مظلوم شده بدونید که الله قادر بر هر کاری ولی کار الله با صبره دنیا هست میچرخه اون کسی که قلدری میکنه به احساس قدرت میکنه بدون یک روزی ضعیف میشه محتاج میشه زمان می چرخه قالوا ائنک لانت یوسف تو یوسفی یوسف رو کردن گفتن یوسفی قال انا یوسف مَن یوسف و هذا برادر من یعنی برادر تنی من ما این دو نفریم که ظلم کردید شما ما همون دوتایی هستیم که شما ما رو ظالم میدیدی می بی گناه بودیم زل کردید چون ما برادر ناتنیتون بودیم نگفت برادر شما گفت برادر من چون این دوتا بودن که مظلوم واقع شده اون ده تا برادر یک دست شده بودن بر عله این دو نفر پدر پیغمبر توجه خاصیم این دوتا برادر داره اونها به حستشون برخورده این دوتا بچه ای گوچه چی گناهی داشتن که اینها بهخواان زل بکنن اینطوری بهشونگه اینها گناک کار بودن خطا کار بودن قال ا یوسف این برادر منن برادر منم قد من الله هم. این جایگاهی که میبینید من در مقام عزت واقع شدم عزیزم اینجا و شما نیازمند من از الله میبینم منت الهی ورزفر نکنید که من با مک رسیدم با نیرنگ رسیدم با برنامه خودم رسیدم اصلا اینی که دارید میبینید مال من نیست من به دست نیوردم اون کسی که میده کسی دیگر الله این مقام بندگی و عبودیت شما مک کردید شما اهل دنیا بودید خدا را فراموش کرده بودید غافل بودید ازش الله این چنین خار و زلیلی کرد ولی من الله را حفظ کردم احفظ الله ای احفظ توسیه رسول الله از آسف ابن عباس الله را حفظ کن تو را حفظ بکنه اگر میبینی این مقام مننت را در من الله ما را حفظ کرد چون ما الله را حفظ کردیم این مننت فقط منت الهی از تلاش من نیست از زحمت نما نه نبرادرم نه دنیا رو ما به دست نیوردیم من با دست خودم به اینجا نرسیدم الله بود که مننت من به اینجا برسم هر کسی هر مالی داره هر چیزی که داره از خودش نبینه الله به هد داده از الله ببین فکر نکن با اون پولی که به فقیری میری و مستمندی میدی از زحمت و عرقت بوده والله بود. که تو از اون زحمتت به دست نیوردی الله بر تو مننت گذاشت در جیبت گذاشت الله است که روزی کرد و اون کار و اون حرفه رو الله بود که به هد یاد داد و توانایی رو الله در تو گذاشت که اون ما رو به دست بیاری مال تو نیست مالی است که الله بر سر تو مننت گذاشت این مقام عبودیت و بندگی رو الله در به ما اینجا یاد میده یاد بگیرید از یوسف که اون دنیایی که الان مسخر شده از خودش نمیبینه مال خودش رو نمیبینه اصل الله میبینه الله است من این مننت را داده این مننت الله بر سر من گذاشته این نعمت رو الله بهم به داده که منم باید در ایزای اون شوگزار باشم چون شوگزار بودم الله مننت رو گذاشته بندگی و شکر قد من الله علینا اینجنی الله مناتت بر ما گذاشت پس آدم باید محسن باشه آدم باید نیکوکار باشه آدم باید خوب باشه تا الله خوب براش ورق بزنه و درهای منتش را براش باز بکنه همیشه مال نعمت نیست مال گاهی نعمت فرعون رو نابود کرد الله با مالش و قدرتش سر برزانش. ولی اینجا این مال نعمته که انسان به درد دیگران بخوره بر سر خزانه پادشاهی و امپراتوری مصباقع شده که به درد دیگران بخوره این منت الهیه که شخصی که سروتی داره مالی داده الله بهش از خودش نبینه و ببینه که اون فقیر حقی داره در سهمی داره در این مال این مال هست که نعمته این نعمت هست که جایی شکر و سپاس داره انسان که شکل گذار شد الله درهای مننت و فضلش براش باز میکنه. درهای روزی رو باز میکنه. از زمانی که نوح بوده تا رسول الله صلی الله علیه وسلم همه مجدگانی های پیامبران به این بوده یورسل السماع علیکم ایک در مقابل ایمانتون درهای آسمان رو الله براتون باز می درهای روزی رو باز می کنه یرسل علیکم. علیکم شکر. آدم را غنی میکنه بی نیاز میکنه چه مقام برادران که اینطور زلیل شدید خار شدید نیازمند محتاج بنده شدید حرف یوسف اینه عزت من شرف من مقام من جایگاه من که الله به هم داده در ازای شکری بود که ما انجام دادیم ولی شما ناسپاس و ناشک بودید الله اینچنین محتاجتون کرد به خلق خودش اینچنین شما را فقیر و محتاج دیگران کرد ای که به تن و بازوی خودتون به قدرت خودتون به جمع خودتون افتخار میکردید مینازیدید دنیا جای فخفروشی نیست زرگویی نیست این درس هایی هست که سه تا کلمه یوسف الله به من و شما داره میده و به تمامی مؤمنی در سه کلمه قد من الله و علینا این منتی بود که الله بر ما گذاشت. این منتی چطور اومد؟ چی این منتی؟ نهایت عزت و شرف شما از این منتی محروم شدید خاطر گناه و خطای خودتو راه تسیابی به این منت و فضلم بهشون میگه یوسف علیه السلام بخاطر خاطر اینکه امتها بعد از یوسف درس بگیرن و اون راه را بگیرن ادامه بدن. نام یاد این بزرگوار انچرین بزرگ باقی موند با اون بخششش با اون کرمش با اون تقواش با اون صبرش زبان نیکی از خودش گذاشت من خلق و خلایق اینچرین الله او را ستایش میکنه جای ستایش داره برادرانی محتاج اومدن به قصر پادشاهی اومدن حاجت خودش رو میخوان و اینم در مقامی قرار گرفته که قدرت به دستشه زبان امور به دستشه یک زبان شاکره یک زبانش نصیحت انه منیت یتقی و یصبر بدون تقوا و صبر دو نجاته ان الله لا يضيع اجر المحسنين تقوا وصبرت که شما رو به درجه احسان میرسونه مستمر میشه که الله شما را فرابوش نکنه جزای خیرتون بده فإن الله لا يضيع اجر المحسنين بدانی الله زایع نمیکنه الله از بین نمیبره پاداش کسی که احسان بکنه به درجه احسان برسه اون چیزی که گفتیم و بارها تکرار کردیم که رسول الله صلی الله علیه در جواب جبرئیل میگه انت اعبد الله کانانک تراه الله رب پرسی چنانچه الله رو جلو خود نبید. قیامت را وقتی که در نماز اذا انزلات الارض زلزالها قيامه رجل وچش خودت ببيني و اون صحنه محشریکه اللهم دبری قضاوت بين خلایقش الان قارعه من القارعة وما ادراك ما القارعه ون كدر ان قارعه و اون نهیب گیر در شیپور اسرافیل میدمه و اون میشه من قارعه جلو چشمت ببینی و خودت را یکی از اون مشورین اون کسانی که در صحنه رستاقیز حاضر شدن ببینی تصویر رو با جلو به خودت ان تعبد الله كان فعلمم تکن طراح و هو اگر الله را نمی بیننی چنان تصور کن که الله تو را داره می بینه حددا اگر تو نمی بینی الله را جلو خودت الله تو را داره می بینه نازره بر تو حالمه بر تو. رمز برخورداری خودش از این مند و فضیلی که درش واقع شده رمز در چی می بینه توا تقواچیه تقوا به قی هست تقوا ستریه از حیاب. از سرس از الله از محبت الله از شناخت الله الله را بشناسی شرمت بشه که گناهش را انجام بدی سرتو بعد بالا بیاری روز قیامت بیاد داشته باشی اون روزی که جلوش میسی و خشعت الاسوات و الرحمان. الله را بیاد داشته باشی با اون جبروتش با اون قهرش با اون عزتش در روز قیامت با جلوش بیستی لمن الملك اليوم لله الواحد القهار باید الله بشناسی با اسم و صفاتش که پاداشش رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان بهشت انه و 99 اسم من احصاها دخل الجنه کس احصابه بکنه بدون جلو چشم خودش ببینه از اون اسم ها برای دعاش استفاده بکنه بار بار تو روز رسانی روزیم بده تو رحمانی رحم كنتو من رحم کن تو بخشنده‌ای من به بخشش غفوری عفووی من کنین دعای که توصیه از در شبکه قدر اسلام بکنه برای خودش اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ولی بدون عفنه کردی عفو نمیشه عف کن از بندگان خطا کارون اینجا دی که درسی سوره یوسف عف گذش کن از دیگران از خطاهاشون که تو الله از تو گذشت کنه درسی که الله به هر دعوتگری میده ظلم میشی پشت سرت حرف میزنن بدی بهت میکنن میگن تو عف کن تو ببخش هر چه قدم بخواد دوست باشه نزدیک باشه برادر باشه خواهر باشه پدر باشه عفو کن یاد بگیریم از درسی یوسف عف تقوی هست یوسف را علیه السلام به این جایی گاه تقوا را باید کسب کرد، تقوی را باید خرید، تقوا را باید زحمت کشید براش خرید با صدقه دادن، خرید با کمک و احسان به دیگران خرید با نماز این آفله و سنت، با اسکار، با نماز تحجد، باید خرید تقوی همین دوری نیست با زحمت باید بخری ال سلعط الله غاليه. کالا الله بهشت الله گرانه باید خرید با زحمت بکشی مفتی و مجانی در اختیار کسی قرار نمیدن. با حلال و حرامت بفهمی با دینت رو بیام موزیات بگیری نرفتی دنبال دینت که یاد بگیری مقام تقوا پیش نمیاد باید بری الله را بشناسی از توهیدش بفهمی از سفاتش بفهمی از دینش حلال و حرامش بفهمی تقواص مقامامه این میطلبت با جهل نميشه. با جهل ميشي برادران يوسف که. یوسف خطاب برادرانش میگه قال هل علمتم ما فعلتم بي و واخي اذ إن انتم جاهلون الجهل درد جهلتو رو اعرابی میکنه تو رو منافق میکنه الاعراب اشد كفرا نفاقا کفرشون شدیده بخاطر چی؟ نفاقشون شدیده بخاطر جهل نسبت به بدين دين بديني شنو اهميات از روز خود شما به علم نمیدن به شناخت الله و دینش نمیدن تقوا این ميطلبه که تو دينت رو بياموزي تا الله تو رو از و فضلش محروم نسازه که متقي شدي در مقابلش فکر نکن که سختی نميبينيم اقامت تقوا سختی و دشواری داره با تحمل بکنی در مقابل اون تقوات که آسیب ببینی پشت سرت حرف بزنن تهمتت بزنن زن و بچه بر سرت چیره بشن و خواسته هایی داشته باشن که تو نتونی برآورده بکنی جایی میشه فرزند بر انسان چیره میشه جایی میشه همسر بر انسان چیره میشه که مشغولش بکنه بر دنیا و او رو از الله غافل بکنه بعد از زنانی چنینن فقط دنیا رو میبینن فتنه چنانچه بارها گفتیم مال و بنون که الله میگه فتنان فتنان چون شما در ام سختی میندازن زحمت میکشی زن بچهت با چه قیمتی از دین زدنت از آخرت زدن میزنی از همه چیز به خاطر اینا که زبان شکری داشته باشد که اون هم یک بدی ببینن کل خوبیات رو را فراموش میکنن پس به فکر خودت باش نه این که از فکر اونها غافل باشی نصیبت از دنیا فراموش نکن ولی هم مغمد خودت باش و با اون لحظه ای که در قبل تو را می خوابونن برونحت رو میکشن اون لحظه ای که جلوه الله میستی. سحنه سختیه اون صحنای سخت سختی تقوات را برات آسوم می کنه چیزی که الان یوسف را به این مقام رسونده تحمل و صبرش در مقابل اون مصیبت. همچنین یعقوب علیه السلام گفت که من حرفی اگر دارم با خود اشک و بثی و حزنی الى الله با شما کاری ندارم الله اینچنین قسمت کرده حرفم با الله از اون میخوام در مقابل تخصیلی کتوهی اگر داشتم عفوام کنه مقام بندگیه کسی را از چشم کسی مسیبت را نیبینه میبینی الله اینچین قسمت کرده راضی به قسمت الله یوسفم علیه و السلام همی میتون چه اون مصیبت که توسط برادرانش دید چه اون مسیبتی که از زنان دربار و زریخا دید چه از اون مصیبتی که در زندان دید مراحل مختلفی از مصیبت هست ولی زبان ناشکر و ناسپاسی از یسف شما نمیبیدید در طول قصه با نه از یعقوب علیه السلام زبانشون همیشه شکری هر هرچی کردی تو بر ما خوب بوده پدی از تو نیست همون دعای رسول الله صلی الله علیه و آله تاحد، فالخیر كله بیدیک و شغل بدی از بادی است. مقام صبره، قام شکیباییه. کل ها رو در دنیا براش راحت کرده، این همه زندانی کشیده. ولی که براش اون زندانی امتحانیه، یک سختیه که براش عزت میاره، ذلت نمیبینه در اون زندانیش. و نتیجه این فضل و این مننه را از اون عبادت میبینه. اون صبرش عبادت بود. اون عبادت بود. این همه مدت صبر کرده تحمل کرده همه اینها عبادت بوده و این پاداشی هم منتی هم که الله گذاشته مافوق اون عبادته که مجردی یک نعمت نیست بلکه منته نگفت قد انعم الله علينا عليهنا نگفت این نعمتی بود که الله به ما گفت نه این منتی بود که الله گذاشت مننت وقتی که تو کاری نکردی بر سرت مننت بزاره اون چیزی که در خودت میبینی مافوق استحققاقت مافوق کاری که تو انجام دادی تو کاری نکردی هر چی داری از فضل رو منت داری بالاتر از نعمته که من این کار رو انجام دادم این پاداش کار من نه ما فوق پادا این مقام صبره و ج منم عم متنی دو نه بهمرن لم مصاب رو وکن به اگر به درجه امامت رسیدن اگر به درجه شرف و عزت رسیدن این چین یوسف عليه سات اصلا بزرگ میشه این مقام، یک مقام یقین و حسن زن به الهی کانوبایات نیو قنون و مقام دیگر صبر و شکیب و این مقام به سادگی به دست میاد مقام ابراهیم همیتور تا اللهم یک انا امتن یک امتی بود امامی بود رهبری بود برای حالا چه بخوام بگیم خودش یک امتی بود چه بگیم امامی بود برای امتای بعدی ابراهیم قدوه و الگوست الله میخواد مثل ابراهیم شکیبا باشیم حتی اگر در منجنیخمون بزنند و در آتشی پرت بکنند چی چیزی ام ایران نمرود به پا کرد الله این مقام صبر را از من و شما میخواد حتی اگر در سر منجنیختون انداختن گذاشتن و شما را در آتش بیاندازن ای بنده تو هم مثل ابراهیم امتی باش بزرگ باش الله با توست تو بزرگی الله بزرگ و عظیم با اون جبروت و قهرش با توست از چی می درسی. اون آتش هم برات رحمته چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم عذاب آتش دجال یاد میکنه میگه کسی اگر در آتش اون وارد بشه اون رحمت الهیه اون چاقوی که برگردنت به خاطر دعوتت بذارن خونت را بریزن بدون اون چاقو چاقوی به بتعزت میده شرف میده که به اون مقام یاد نیکی همچون ابراهیم برسی کسی که به حق کشته میشه یاد و نامش نیک میبینه میشه بزرگوار میشه دعای خیر همه براش میکنن چرا بترسیم از مرگ میترسیم کش این دیگه بالاترین حد گمانی که بر دنیای خودمون میکشنمون اخر کشتن ما چه با چاقو چه با آتشش رحمتی بر ما چرا بترسیم الله بهمون داره درس میده دینتون عزیزتر از هر کسی باشه واس هر چیزی باشه تا این از فضل و منت الهی برخوردار بشید قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين نقفتن مخطئين گفتن خاطین این چنینین الله درهای فضل و بخششش بر تو یوسف علیه السلام این چنینین درهای فضل و بخششش بر تو باز کرد و این تو رو بر ما چیره ساخت که بر ما حک بکنی و حک فرما بر ما باشی قالوت الله بازم قسم به یاد الله میکنن قالوت الله والله این مقامی که تو درش واقع شدی در این فضل و مکانت و جایگاه لقد اثر الله از مننت الهیه این الله بود که تو را در این مقام گذاشت و ما هم که در این مقامیم مقام زلت مقام خاری در مقابل تو ایوسف و خاطر اون گناه مخت و خاطر مخت خطای انجام میده نمیدونه از جهلش نادونیشه ولی خاطئ نه میدونه حالا این که فرقی که گلوه ما گذاشتن نگفت ما مخته بودیم اشتباه کردیم مجرد یک اشتباه نه یک اشتباه عمدی بوده اختیاری بوده ما مقصر بودیم ای یوسف اون زمانی که تو را به چاه انداختیم ما ظالب بودیم اقرار به ظلمه چنانچه یونس علیه السلام در شکم نهنگ گفت لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمی انسان وقتی خودشو رو ظالم میبینه نه الله درهای رحمتش رو بهش باز میکنه و نجاتش میده چنانچه الله آدم رو میبخشه ربنا ظلمنا انفسنا ولما تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین مقام تقصیر مقام قرار به اشتباه انسان رو نجات میده اینها وقتی که عزت یوسف را دیدن چطور الله حاکم بر اونها قرارش داد اونجا هست که به اشتباه خودشون پی بردن دعوتگره با با سخنانی خیلی کندک اینچنین اینها را بیدار میکنه. در ظلمت تاریکی معصیت و گناه به سر می بردن تا جایی که به یوسف خطاب کردن اینه صرف فقط سرق اخون لهو برادرشم قبلا دوزی کرده خیلی برای یوسف سنگین بود اینا هم چنان در اون تاریکی گناه بودن تا الان که محتاجن. ولی که اینجا یوسف علیه السلام طوری باشون برخورد میکنه که اونجا به چشم یک برادر دیگه نگاه نکنن به یوسف به چشم یک پیغمبر انتخاب شده به یک ناصح و نصیحتگر و دلسوز و چون عادی طبیعی من برادر دارم خواهر دارم شاید حرمت و حشمتی به قول خودمون نزد شما داشته باشه احترامی من داشته باشه ولی خب من در خانواده و کنار برادر و خواهر که با هم بزرگ شدیم اینو ندارم بخوام حرفی بزنم برادر یک حرفی میزنه خواهر پدر مادر هر که شاید علمی از ذهن نداشته باشد ولی در جمع اینجا حرف و کسی حرف نمیزنه اینجا برادران برادرا جمع شدن دور برش اگر مستقیما بونا میگفت که شما بودید که یوسف رو به چه انداختید شما فلان کردید با ملامت با سرزنش خب پس تو هستی تو فلان شدی این برخورده از مننت یا از فز یوسف به خودش نگرفت که با اون قلدری بیاد یا با اون کپ بیاد یا با اون منیت خودش بیاد که بگه منم که فلان کردم یا من فلانه من میتونم به زندانتون من هیچ کدوم از این حرفای که درش زورگویی باشه از یوسف نمیبینیم بلکه مقام مقام یادی از فضل الهی مقام اون چیزی گذشته درس داره بهمون میده که چطوری یه خطاکاری که سیگار میگشه مشروب مینوشه زنا میکنه چطور باش برخورد بکنیم تعامل بکنیم از طرفی نباید از رحمت الهی محرومش بسازیم خود رو نجاتیده نبین که با سرکشی و بهش بگی ها نگاه که تو جهنمی میشی این دعوت نیست روزی یک جوانی رو دیدم با قد و قواره ساده بود منم کنارش ساده من سیگار به دستش بود نگاه صورتش کردم با لبخندی بهش گفتم برادر خوبی صداش دادم برادر خوبی گفت که بله گفتم نه تو خوب نیستی اگر خوب بودی سیگار نمی کشی. هیف این چهره خوب نیست. این تن زیبا و آراسته نیست. خوبی این سیگار تو چی برادر؟ این سیگار تو میدی من بکشم؟ خوبه؟ یا زشته برادر؟ گفت که نه زشته. گفتم چهره زیبای الهی رو با این زشت کردی زشت نیست؟ تو میگی زشته من بکشم زشته. خودت میگی زشته. پس چرا این زشتی را به دست گرفتی برادرم؟ گفت که والله سیگار رو انداخت. دیگر دست به می... سیگار تو عمرام نمیزنم پارو سیگارش گذاش سر شرمندگی پایین انداخت گفت که تا عم دارم هیچی بهش نگفتم از یوسف درس یوسف منته فضل الهی رو برات فقط گفتم یادآوری کردم الله تو را زیبا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فاحسنا صورك وجهراتك زين زیبا راسته کرده چرا زشتش میکنی با معصیت و چرا بدش میکنی با معصیت و الله الله عزمو زیبایی میخواد چرا ما رو زیبا آفریده این نوع زیبایی در دعوت یوسف و حرف یوسف ما می‌بینید نگفت من به اینجا رسیدم اینو از فضل الهی و کاری من کاره نیستم اومدن با حاجت و نیاز ولی یوسف شما میبینید که میگه که منم محتاج به درگاه الهی هم خودش رو همه کاره نه می‌بینه خودش رو در این جان هیچ منتی از خودشم نمیبینه بر برادرانش منت الهی بوده اینها سبب میشه اونها بیدار بشن اون قلب مردشون زنده بشه دوباره این قلب مرده با اون نور وحی الهی و نبوت است که زنده شد با اون وحی الهی که الله وحی کرده بود بر یوسف با اون دین الهی با اون یاداوری از نعمت الهی وحی الهی وحی است که قلب ها را زنده میکنه قلب های مرده اینها زنده شدند بعد از اینکه سالیان سال قلبشون مرده بود قلبشو تاریک شده بود از تاریکی و ظلمت نیاز داشت که آبیاری بشه توسط یک دعوتگری یک پیغمبری این چنین با نور وحی اونها رو آبیاری میکنه ای مؤمن مردمی که در تاریکی و ظلمت میبینیم محتاجان از اون آب وحی بر قلبشون بپاشی که اون قلب‌ها زنده بشن چنانچه قلبتو زنده شده قلب‌ها نیاز داره بین که زنده بشن الله شاید عقوبتشون کرده بر اون گناه خاطر اون اونها هم تو در مقابلشون مسئولی فکر نکن که عقب بکشی گوشه بگیری از مسیبت و درد فرار بکنی فکر بکنی که حساب کتابی نخواهی داشت نه تو مسئولی والله تو مسئولی آب به دستت دعوت به دستت آبها را الله مسخر زبانت کرده که زبانت با اون خیس بشه که حرف سخنی از الله و از ها و فضلش به دیگران قلباش رو با اون آب آبیاری بکنی این آبه مجانی در اختیارت قرار داده نشده این آبه که قلبها را با اون این آب دهنت آبی که باید را با آن آبیاری بکنی و آباد بکنی وظیفه است این آبه اگر در راستای این نعمت و فضل و به بکار برده نشه میشه نقمت میشه عذاب میشه نکوهش الهی میشه سرزنش الهی میشه عذاب الهی و عقوبت الهی, الهی اللهی سخته تر اختیارت گذاشت این نعمت فقط با حرف زدنت با نیکی صحبت کردنت دیگران رو نجات بدی با زنجیر بکشینی به بهشت الهی تو مسئولی فکر نکن که همینطوری تو رها بشی و بگی من کاری به کسی ندارم به کسی چیزی نمیگم نه والله مسئولی قطر قطر آبی که بر سر زبانت جاری میشه برای اینکه دهنت خیس بشه با اون زبانت خیس بشه با اون این فقط برای این نیست که لقمه ای که میجوی در اون شکمت میره اون غذای حس بشه نه والله الله فقط برای این حس و این ماده و این دنیا نبوده که این آب رو بر دهنت گذاشته بلکه گذاشته که قلب‌ها با اون زنده بکنی قلب‌ها را بیدار بکنی از اون فضل و منت الهی لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين بیدارشون کرد اقرار به گناهشون کردن ما گناه خطا کاریم یوسف علیه الصلاه و السلام قال لا تثريب عليكم اليوم والله خير مقامش با شکوه اقرار دارن به اشتباهشون دعوت نتیجه داد دعوت نتیجه دادی این دعوت. حاصل خیزیه هفت سال حاصل خیزی هفت سال خوش‌سالی سالیان سال خوش‌سالی نعمت و بدبختی الان حاصل خیزیه اینجا مقام عزت الان بود یوسف برداشت بکنه چی رو باید برداشت بکنه خوبی خوبی کاشته تا الان خوبی رو هم باید, باید برداشت بکنه خوبی رو هم باید به وجه احسن تموم بکنه العبره بالخواتیم خاتمه مهمه که خوب باشه خاتمه چیه لا تثریبه هیچ ملامتی لومی عقوبتی بر شما نیست فکر نکنید که من اینجا انتقام انتقامم رو میگیرم فکر نکنید که من الان که من سرزنشتون بکنم که چرا برای بچه‌ها حد داشتید نه اصلا حرفی ندارم ملامتی ندارم برای شما الله خواسته بود که من اینجا واقع باشم شما رو سرزنش نمی‌کنم لا تفری علیکم بر شما ملامتی نیست فکر نکنید که من اومدم اینجا بکوهشتون بکنم بگم که شما خطا کردید گناه کردید نه شما بر شما ملامتی لو نیست یغفر الله لكم قبل از اینکه پدرشون یعقوب براشون تقاضای مغفرت الهی بکنه یوسف اونها رو بخشیده از الله تبارک مغفرت براشون میگه بار الله اونها رو ببخش والله مقام عفه عجیبیه انسان بدیات میگه در مقابل کسی که در حقش خطا میکنه بار الله ببخش در سجده در سخره بار الله خطا کردم عفو کردم غیر از که تو عفو میکنی گذشت میکنی غیر از که گذشت میکنی دیگه به قون خودمون دیگه به روحش نمیدی آقا چرا فلان کار کردین مننت بر سرش نمیذاری یا بنامتش نمیزنی سر زنشو نمیکنی غیر از اینکه این خوبی رو در حقش داری در کنار این خوبی خوبی رو با خوبی دیگه هم جبران میکنی میگه بار الله اونورا هم ببخش عفو کردی اونورا هم می و بتل بخشش برای اونها میکنی بار الله خطا کرده بندگانتن محتاج به درگاهتن بار الله اونها را ببخش یاغفر الله لكم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الله مهربونه الله رحمی داره که رحمت هیچ کسی به رحمت اللهی نمیرسه ارحم الراحمین رحمی که الله داره به خلقش هیچ کسی اون رحم نداره الله رحمان بود بر من اون وقتی که در چاه افتادم و موقعی که در زندان افتادم كمان دیگه شما هم الله بر شما رحم کرد خطا کردید مهلتتون داد تا در اینجا شما بیدار بشید و به گناهتون اقرار بکنید الله بر شما هم رحمانه الله ارحم الراحمین این رحمت انسان همه چیز در زندگیش از ایلو هی بی بینام الله بحمدک سبحان الله بحمد وصلا الله علی, علی محمد و آل محمد